مد و مناجات با امام حسن و امام حسین علیه السلام. دم به دم ذکر ما حسین و حسن ذکر ارز و سما حسین و حسن شافع روز هش رو بر آلم رهبر و مقتدا حسین و حسن ای که گردید خلق نور شما از همان ابتدا حسین و حسن روی دوش نبی و حیدر شد جایگاه شما حسین و حسن نامتان را خدا به احمد داد شد ندا زن صدا حسین و حسن مایه شادمانی کوسر هدیه از خدا حسین و حسن دل به سوی بقی و کرب و بلا گشت امشب رها حسین و حسن دوست دارم به در بیت شما در زنم چون گدا حسین و حسن دل به عشق و محبت پسر شیر حق مبتلا حسین و حسن دوست دارد جواد یک عمری شعر گوید ترا حسین و حسن